عزیزان، آیا تا کنون دعوت خاصی رو دریافت کردین؟ خب، امروز در آخرین درسمون از سری موزه سرکوه در دانشکده کوچک کتاب مقدس، ما دعوت عیسی مسیح رو خواهیم شنید که از شاگردانش و از ما به عمل میاره. بسیار خوشحالیم که تصمیم گرفتی تا در این درس با ما همراه باشید. دعای ما اینه که شما دعوت عیسی رو بپذیرین. حالا این شما و این معلم ما. در این جلسه به آخرین قسمت از این تعالیم عالی که به اون سر کوه گفتیم میرسیم. ما به پایان این تعالیم رسیدیم که به شکل یک دعوت خواهد بود. دیدیم که در به هفت ایسا بعد از پرسیدن نظر مردم از آیه 13 شروع میکنه و دعوت خودش رو عنوان میکنه. یادتونه وقتی این سری درسها رو در مورد سر کوه شروع کردیم، گفتیم که این تعالیم چگونه پایان خواهد یافت تعالیم با دعوت از چند نفر از بین اون جمعیت شروع شد که انواع مشکلات رو داشتند و عیسی به اونها خدمت می‌کرد. او عده‌ای را از بین اون جمعیت دعوت کرد که در بالای کوه به او بپیوندن که در اونجا تمام این تعالیم رو داد. ما قبلا گفتیم که وقتی عیسی اون گرده همایی در بالای کوه رو تشکیل داد، اون جمعیت رو به دو گروه تقسیم کرده بود. در پایین کوه جمعیتی بودند که هنوز بخشی از مشکل بودند و شاید همیشه بخشی از مشکل باقی می‌موندن اما در بالای کوه عده‌ای با او بودند که تعلیم یافته بودند که چطور بخشی از راه حل و بخشی از جواب باشند. پس زمینه و استراتژی موعظه سر کوه که به اون اولین گردهمایی مسیحی گفتیم با این سؤال و چالش به ما ارزه شده. آیا شما بخشی از مشکل هستید یا بخشی از راه حل و جواب؟ آیا شما بخشی از جواب عیسی هستید یا چیزی که به اون یک علامت سوال میگیم یعنی هنوز خود شما دنبال جواب میگردید کجا هستید؟ آیا در پایین تپه هستید یا در بالای تپه تعالیم به افراد بالای کوه داده شده بود پس اگر شما به سوال اول اینطور جواب بدید که با فیض خدا میخواهید در بالای کوه با عیسی باشید اون موقع نمیخواهید که بخشی از مشکل باشید دلتون نمیخواد که فقط علامت سوال دیگری باشید میخواهید که بخشی از راه حل و بخشی از جواب باشید شما یک ایماندار معترف به عیسی هستید یک پیرو او و می بخشی از راه حل و بخشی از جواب او باشید اگر شما به سوال اول اونطور پاسخ دادید پس تمام تعالیم متا 5, 6 و 7 خطاب به شما هست در خاتمه تعالیم من و شما که اعلام می کنیم عیسی هستیم و می نمک روی زمین و نور جهان باشیم و میخواهیم بخشی از راه حل او و جواب او باشیم با یک دعوت حیرتانگیز مواجه میشیم ماهیت دعوت آخر این هست شما چه نوع راه حلی هستید شما چه نوع جوابی هستید شما چه نوع شاگردی هستید این دعوتی است که به شاگردان داده شده این در واقع دعوتی برای نجات نیست و دعوتی نیست که به جمعی از مردم داده شده که مخلوطی از ایماندار و غیر ایماندار هستند این دعوت به کسانی داده شده که اقرار میکنند ایماندار هستند به نظر من محتوای این دعوت این هست. چه نوع راه حلی هستی؟ چه نوع شاگردی هستی؟ دو امکان وجود داره. عیسی سه بار در این دعوت میگه دو نوع شاگرد وجود دارند او میگه شاگردانی هستند که زیادن و شاگردانی هستند که اندکن. آنهایی که زیاد هستند فکر میکنن راه آسونی برای راه حل شدن و جواب شدن و نمک و نور بودن هست. اما آنها هرگز راه حل یا جواب نمیشوند. اونها واقعا نور و نمک نیستن. اونها فقط ادعا می کنند که هستن. اگه ببینید برای کسانی که از راه فراخ پیروی می کنند و فکر می کنند راه آسونی برای جواب و راه حل عیسی شدن وجود داره چه اتفاقی میفته اون وقت فکر میکنم که دلتون نمیخواد یکی از اون اده زیاد باشید. اما بعد ادهی هستند که اندکند. اینها نوع دیگری از شاگردان هستند. اندکند می‌دانند که راه آسونی وجود نداره. آنهایی که زیادند معتقدند که اون از دروازهای فراخ شروع میشه و در راهی فراخ و مسطح ادامه پیدا میکنه اون راه مستقیما به هلاکت منتهی میشه. اما بعد عده‌ای هستند که تعدادشان اندک است. آنها میدونند که دری تنگ هست و راهی در ادامه اون در تنگ است، راهی باریک، سخت و منظم هست اما اون راه منتهی به حیات میشه. فقط تعداد اندکی آن را پیدا می کنن. چالش واضح در آیات 13 و 14 اینه آیا شما یکی از اون تعداد زیاد هستید یا یکی از افراد اندک دعوت این هست از در تنگ وارد شوید زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به حلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم. کم هستند قسمت بعدی دعوت در آیه 15 تا 20 هست و مفهوم این پاراگراف این است که آیا شما شاگرد حقیقی هستید یا شاگرد دروغین لازم نبود کسی به عیسی بگوید ایده زیادی خواهند بود که ادعا خواهند کرد شاگرد عیسی هستند اما واقعا شاگرد حقیقی نخواهند بود من همیشه تعجب می کنم که چطور مردم فکر می کنند وظیفه این هست که به ما شبانها بگویند ادعی زیادی ریاکار در کلیسا هستند. به عنوان شبان، من به خانه های زیادی دعوت شدم که در اونجا به من گفتند: شبان، تعداد زیادی ریاکار در کلیسای تو هست. به این دلیل من به کلیسا علاقه ندارم و شروع کردن به صحبت درباره ریاکاران کلیسا. من احساس می کنم که باید به چنین کسانی بگم گوش کنید. من متخصص این مسئله هستم. هیچ کس بهتر از یک شبان از ریاکاران کلیسا خبر نداره. ما میدونیم همه ی کسایی که ادعا کنند پیرو مسیح هستند در واقع پیرو مسیح نیستند و عیسی این رو میدونست در این بخش از دعوت عیسی میگه دو احتمال وجود داره شما میتونید شاگرد حقیقی یا شاگرد جعلی باشید اینجا او دوباره میپرسه شما چه نوع شاگردی هستید این دعوت خطاب به عموم مردم نیست خطاب به کسانی که ادعا کنند شاگرد مسیح هستند خطاب به جماعت کلیساست. این چنین دعوتی هست گوش کنید این یکی چی میگه از انبیاء دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما میآیند ولی در باتن گرگان درنده‌اند آنها را از اعمالشان خواهید شناخت آیا میتوان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چی همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد درخت نیکو نمیتواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو درختی که میوه خوب به بار نیاورد، آن را میبرند و در آتش میاندازند. بنابراین شما آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت. آیا این خارق‌العاده نیست؟ به نظر من که هست. عیسی نمایی از کلیسا را به ما میده و او ساده‌لوح نیست. او میدونه کلیسا چگونه خواهد بود. اگر شما تاریخ کلیسا را بخونید، اون میتونه چالشی برای ایمان شما باشه. دوره‌هایی در تاریخ کلیسا بودند که تاریک تر از اون بودند که بتونن شما رو نجات بدن وقتی در مورد چیزهایی بخونید مثل تفتیش عقاید و یا بعضی از اعمال گناهالود که کلیسا در طول تاریخ کلیسا به اونها مبادرت میکرد، تعجب می کنید که اونها چطور به اینجا رسیدن چطور کسی میتونه در نام عیسی مسیح دست به چنین اعمالی بزنه و ادعا کنه که کلیسای مسیح هست خب اینها برای عیسی تازگی نداره مسیح که بود و مسیح که هست خب اینها برای عیسی تازگی نداره، برای مسیحی که بود و مسیحی که هست این قبیل چیزها تازگی نداره و با این چیزها مرعوب نمیشه. او در ابتدا به ما گفته که چنین چیزهایی خواهد بود. او گفته که شاگردان حقیقی و شاگردان دروغین خواهند بود. پس چالش اینه. دو نفر روی نیمکت هستند. شما کدام یکی هستی؟ آیا با فیض خدا شما حقیقی هستی؟ یا جعلی هستی؟ کتاب مقدس در جاهای زیادی مثل دوم قرنتیان 13 آیه 5 به ما میگه خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه خود را بازیافت کنید آیا خود را نمیشناسید که عیسی مسیح در شماست اگر مردود نیستید راه دیگری برای گفتن اون این هست همه میتونن شاگرد جعلی باشن در کتاب مقدس به همه ما نصیحت شده که خودمون رو امتحان کنیم آیا با فیض خدا ما شاگرد حقیقی عیسی هستیم با فیض مسیح آیا ما واقعیت او رو درون خودمون داریم یا اونطور که آیه پنج باب سه دوم تیموتاوس میگه هستیم که ظاهرا خدا پرسدند ولی واقعیت آن را انکار مینمایند آیا ما با فیض مسیح حقیقی هستیم؟ این چالشیه که هر کدام از ما مرتبا با اون مواجهی. عیسی این تعالی انگیز رو به ما میده تا اینکه مثل او واقع بیم باشیم شما نمیتونید از بوته خارنگور و از خاربون انجیر به دست بیارید اینجا یک قانون هست باز هم این قانونی طبیعی در دنیای روحانیه درخت خوب میوه نیکو به بار میاره و درخت فاسد میوه بد اینجا حتی با تأکید بسیار اظهار شده یک درخت نیکو نمیتواند میوه بد به آورد آیا این اظهار جالب توجهی نیست؟ با فیض خدا با مسیح که در شما زندگی میکنه اگه او شما رو تبدیل کرده اگه او شما رو دوباره متولد کرده پس شما خلقتی تازه هستید چون او موجزه تولد تازه رو در شما به عمل آورده از اون نظر شما حقیقی هستید نه به خاطر تلاش خودتون یا به خاطر نیکویی خودتون بلکه به خاطر تلاش و نیکویی او بنابراین اگر در شما معجزه انجام یافته و شما درخت نیکو هستید نمیتونید سمره بد بیارید آیا این وعده تنگیزی نیست؟ به همون ترتیب درخت باد نمیتونه میوه نیکو به بار بیاره. شما نمیتونید اونو جل کنید. من شنیدم که مردم اغلب این شعار کوتاه رو میدن. اونقدر اون رو جل کن تا بتونی اون رو بسازی. این شاید در بعضی عرصه های زندگی کار کنه. اما در کلیسای عیسی مسیح، گمان نمیکنم کار کنه. به نظر من ایده زیادی در کلیسا اون شعار رو به کار گرفتن که میگه اونقدر جل کن تا اون رو بسازی. دو امکان وجود داره. درخت باد و درخت خوب دیر یا زود از روی میوه آنها را خواهید شناخت این قانون بزرگه درخت نیکو نمیتونه میوه بد به بار بیاره پس نهایتاً شما خواهید دانست چه نوع درختی هستید و چه نوع میوهی به بار میارید بعد شما این تعلیم رو دارید که در تطابق با تعالیم خداوند در جاهای دیگه هست درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را میبرند و در آتش میاندازند او این را در یوحنا 15 پانزده هم گفته اگر کسی در من نماند مثل شاخه بیرون انداخته می شود و می خشکد. و آنها را جمع کرده در آتش می و سوخته می شود. گفته او مثل تاک است و ما مثل شاخه ها که به تاک متصل هستند. او گفته اگر کسی در این تاک که من هستم بماند میوه می آورد. پدرم آن را هرس می کند و اون میوه بهتر و بیشتری می آورد. اما اگر میوه نیاورد آن را بریده دور میاندازند و بعد مردم آن را جمع کرده در آتش میسوزانند دیر یا زود مردم خواهند فهمید که آنها زنده نیستند و شاخه حقیقی نیستند بلکه شاخه مرده‌اند اینجا باز هم تعلیم حیرتنجیزی دارید هر درختی که سرانجام میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده میشود. این تعلیم ترسناکیه و چالش اینه که آیا با فیض خدا شما یکی از شاگردان حقیقی هستید یا شاگرد دروغین در آخرین پاراگراف از باب هفت این تاکید رو میبینیم. آیا شما یکی از کسانی هستید که حرف میزنید یا یکی از کسانی هستید که عمل میکنید؟ هیچ کس هرگز به اندازه عیسی عملگرا نبوده من معتقدم شما میتونید سومین بخش از این دعوت عظیم رو اینطور جمع بندی کنید شما به چیزی که واقعا باور دارید عمل کنید و بقیه وردهای های مذهبی هست حرف مذهبی مشکل اون مردم رو حل نخواهد کرد حرف های مذهبی به اونها پاسخ نخواهد داد راه حل و پاسخی که من میخوام باشید فقط حرف های مذهبی نیست خیلی ها هستن که میتونن در مورد مسیحیت حرف بزنن خیلی ها هستن که میتونن در مورد الهیات سخنرانی کنن و تمام آیات کتاب مقدس رو براتون توضیح بدن البته کسانی هستند که میتونن بگن هر کسی چه اشکالی داره، اما عیسی در بالای کوه اون اددار رو به کار نگرفت که در مورد این مسائل سخن رانی کنند. در مورد کنفرانسی بین المللی شنیدم که در اونجا از مأموریت کلیسا بحث می افرادی از منلت زیاد اونجا بودند و از استراتژیهای مختلف بشارت به دنیا صحبت می یا از نحوه بشارت در منطقه خودشون صحبت می از دختری که از کشوری متفاوت در افریقا اومده بود پرسیدند شما مسیحیان در اونجا برای بشارت چیکار میکنید او پاسخ داد ما یکی دو خانواده رو که خداوند رو میشناسن و به او متعهدند به روستاهای اطراف میفرستیم که برند و یکی دو سالی اونجا زندگی کنند و فقط زندگی روزمره شن رو در اون روستا بگذرونند بعد وقتی مردم روستا ببینند که پیروان مسیح چگونه زندگی میکنند و ارزش های اونها چی هست؟ اونها هم دلشون میخواد که ایمان بیارن. من فکر میکنم این روشی عالی برای بشارت هست. بسیاری از مبشرین ما کاری جز تبلیغات نمی کنن. اونها فقط حرف های مذهبیه. ما فکر میکنیم که متخصص الهیات و سخنرانی و نظریات هستیم. اما یادتونه وقتی نیقودیموس شبانه نزد ایسا اومد به او گفت ای استاد ما میدانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای زیرا هیچکس نمیتواند معجزاتی را که تو میکنی انجام دهد مگر که خدا با او باشد چیزی که نیقو دیموس می میگفت این بود ما طرز زندگی تو را دیده ایم و حالا میخواهیم صحبت های مذهبی تو رو بشنویم همونطور که در مورد نیقودیموس بوده امروزه هم همون مسئله صدق میکنه شاید فکر کنیم که مردم علاقمند صحبت های مذهبی ما هستند اما مردم فقط زمانی علاقمند صحبت‌های مذهبی میشند که قبلاً تحت تأثیر زندگی ما قرار گرفته باشند شما باید از چیزی صحبت کنید که خودتون به اون پابند هستی. این همون چیزیه که عیسی درباره اون صحبت می‌کنه به این گوش کنید نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمان وارد خواهد شد بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت نکردیم آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نکردیم آنگاه صریحا به آنان خواهم گفت من هرگز شما را شناسم از من دور شوید ای بدکاران پس کسی که سخنان مرا میشنود و به آنها عمل می کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود باران بارید سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورا گردید اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر سنگ بود اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد باران بارید سیل جاری شد و باد وزیده به با آن خانه زورا گردید و آن خانه فروریخت و چه خرابی عظیمی بود در این دو پاراگراف از آیات 21 تا 23 و بعد 24 تا 27 عیسی دعوت عظیم خود رو به پایان میرسونه دو نفر روی نیمکت هستند شما کدام یک هستید آیا یکی از تعداد زیاد هستید که فکر میکنن میتونند با گذشتن از در فراخ که به جاده پهن و هموار منتهی میشه و نهایت اون ناکجا آباد هست راه حل و جواب و نمک زمین و نور جهان بشن؟ آیا شما جز افراد زیادی هستید که فکر میکنند راه آسونی برای راه حل شدن هست؟ و تنها کاری که باید بکنید عبور از جده های بیمانه هست؟ یا جز تعداد کم هستید که میدانند لازمه شاگردی عبور از در تنگی هست که از جادهای ناهموار و تنگ و سخت و با انزبات عبور میکنه؟ عیسی گفت تعداد کمیان راه را پیدا میکنند که یک راه حل بشوند اما این اولین امکان در دعوت او هست. آیا شما جزو افراد زیاد هستید یا اندک؟ و بعد آیا حقیقی هستید یا دروغین؟ آیا شما واقعا شاگرد او هستید و بعد بالاخره این چالش هست. آیا یکی از اونها هستید که حرف میزنند یا یکی از کسانی که عمل میکنند؟ تعلیم حیرت انگیزی در رابطه با حرف زدن و عمل کردن هست. این یکی از هیرتنجیزترین متنها در کتاب مقدسه. او میگه وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت نکردی آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم آنگاه صریحا به آنان خواهم گفت که من هرگز شما را نمیشناسم از من دور شوید بدکاران این تعلیم وحشتناکیه او به آنها خواهد گفت من هرگز شما را نمیشناسم تمام کارهایی که شما کردید شامل معجزات و شفاها و غیره هیچ ارزشی برای من ندارند. اون کارها رو برای خودتون کردی من هرگز شما رو نشناختم آمدن مفیدی به سوی من نبوده فقط رفتن بوده شما تمام اینها رو با قوت خودتون انجام دادید شما اونها رو با چیزی انجام دادید که پولوس به اون اعمال نفس میگه من کاری با اونها ندارم از چشم من دور شوی. آیا این ترسناک نیست؟ چطور مردم میتونن زندگیشون رو سپری کنن و منافع بسیار ابدی اون رو از دست بدن شاید اونها هرگز تعالیم این سباب رو نخوندن و به عمق اون پی نبردند که عیسی واقعا چی میگه دومین روشی که این رو برای ما میگه به تصویر کشیدنه نقاشی مورد علاقه بسیاری از مردمه. در این تمثیل نهایی عیسی به ما میگه که کلمه زندگی رو چگونه به تصویر میکشه تصویری که عیسی میکشه نه آرمانگراه هست و نه بدبینانه بلکه اون واقع گرایانه هست عیسی میگه زندگی اینه دو خانه کنار هم و طوفان بر هر دو خانه فشار میاره سیلاب ها بالا میان و باد بر اون دو خانه میوزه این چیزی واقع گرایانه هست چیزی که او میگه اینه که شما دو نوع مردم در این دنیا دارید فقط دو احتمال وجود داره اما هر دوی اونها به نظر شبیه هم هستند تا اینکه طوفان بیاد اما او در تصویری که میکشه بسیار واقعبین هست. چون او میگه همه طوفان را تجربه خواهند کرد تمام مردم با این دو خانه نشان داده شدند عیسی میگه هیچکس از طوفان در امان نیست خیلی از مردم فکر میکنند وقتی اقرار میکنند که پیرو عیسی مسیح و کاملا به او باور میکنند و یکی از شاگردان او میشن در مقابل طوفان مسؤونیت پیدا کنند. این همون انجیل کامیابی هست که این روزها خیلی موعظه میشه. در حالی که چنین چیزی نیست. طوفان بر همه میاد. اما عیسی گفته وقتی طوفان بر این دو خانه فشار میاره یک خانه متلاشی میشه و دیگری پا میمونه. چون یکی از خانه ها پی داره و دیگری نداره. حتما میدونید پی چی هست. کسی که این سخنان منو میشنوه و عملا اون رو میپذیره از اون قدردانی میکنه، اون رو به کار میگیره و از اون اطاعت میکنه این همان پی یا زیرساختی هست که خانه رو در مقابل طوفان حفظ میکنه این بسیار کاربوردی هست ببینید او نمیگه که میخواد مردم بیشتر بدونن یا بتونن بیشتر حرف بزنن او داره میگه من میخوام مردم درک کنن بپذیرند و اطاعت کنن اینگونه افراد هستند که راه حل و پاسخ من خواهند بود و حالا چالش اینه دو مرد روی نیمکت هستند. شما کدام یکی هستی؟ به این ترتیب عیسی این تعلیم بزرگ رو در اولین گردهمایی همایی مسیحیان به پایان میبره. نمیدونم آیا شما میتونید کاربورت هایی از این برای قلب و زندگی خودتون پیدا کنید یا نه؟ شما کجا هستید ؟ آیا بخشی از مشکل هستید یا بخشی از راه حد؟ و بعد چنون راه حلی هستید؟ آیا جزء افراد زیاد هستید یا افراد کم؟ آیا جز کسانی هستید که حقیقی هستند یا جز کسانی هستید که دروغین هستند؟ آیا یکی از اونهایی هستید که حرف میزنند یا یکی از اونهایی که عمل میکنند؟ آیا شما واقعا نمک روی زمین و نور جهان و شهری که بر بالای تپهی بناشده هستید؟ خب دوستان به پایان سری پیام هایی از تعلیم ایسای مسیح معروف به مععزه سرکوه رسیدیم. اما اگه تصمیم گرفتید دعوت ایسا رو بپذیرین و یکی از تعداد اندک باشین یکی از کسانی که عمل می و فقط حرف نمی و جزه کسانی باشید که با وفاداری پیروی می پس امروز این شروع زندگی پرهیجان شاگردی عیسی مسیحه دعای که شما در آگاهی و ایمان رشد کنین و این حقیق رو در زندگیتون بپذیرین و با پذیرفتن اونها تبدیل به نمک و نور بشین و شاگردی باشین که خداوندمون عیسی مسیح میخواد باشین. باشد که از این پس جوری گام برداریم که شایسته خداوندمون باشه و در هر کار نیکو پرسمر باشیم و در شناخت خدا رشد کنیم. باشد که با تمام قوت او برحسب به قوت با شکوه و تقویت بشیم. باشد که صبوری و تحمل رو با شادی تجربه کنیم با شکرگزاری از پدر که ما را شرکا و وارثین مقدسین در نور گردانیده و ما را از قدرت تاریکی رهانیده و ما را عضوی از پادشاهی پسر عزیزش عیسی مسیح کرده که به خاطر نجات و بخشش گناهان ما خونش ریخته شد آمین